پرشید کمند صبح بر با مفکند، که خسرو روز باده در جا مفکند، میخور که منادی سهرگه خیزان آبازه در احیام افکند. یاران به موافقت چو میاد کنید، باید که ز دوست یاد بسیار کنید، چون باده خوشگوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید. چندان کرم و لطف ز آغاز چه بود، بانداشتنم در ترب و ناز چه بود، اکنون همه در رنج دلم میکوشی، آخر چه گناه کردهام باز چه بود؟ آنها که اساس کار و زرق نهند، آیند و میان جان و تن فرق نهند، بر فرق نه هم خروس پس از این، گر همچه خروس هم بر فرق نهند.